استاد، بغداد، رمزان 639 روزی را که شمس تبریزی به زاویه فقیرانه من پا گذاشت، هیچگاه فراموش نخواهم کرد. آن روز بعد از ظهر مهمانهای مهم می داشتیم. قاضی القضاد با اعوان و انسارش به کلبه درویشی من آمده بود. به نظرم این ملاقات ناگهانی صرفا نشانه نزاکت نبود قاضی که همه میدانستند اهل تصوف را دوست ندارد می‌خواست ما را نیز مانند همه صوفی های منطقه از نزدیک زیر نظر بگیرد لابد آمده بود به ما بفهماند که چشم از ما بر نخواهد داشت قاضی القضا آدم هریسی بود. صورتش در هم رفته، شکمش بزرگ و آویزان. انگشت‌های گرد و قلمبش پر بود از انگشتر گرام قیمت. برای سلامتیش بهتر بود اینقدر پرخوری نکند. اما به گمانم هیچ کس، حتی طبیب خودش، جرأت نداشت این را به او یادآوری کند. از آنجا که به خانوادهی مشهور و نفوذ منصوب بود و پدرانش از دیرباز عالم دینی بودند از قدرتمندترین شخصیت‌های منطقه به شمار می‌رفت. با یک کلمه که از دهانش در می آمد، ممکن بود آدمهایی بالای دار بروند. همینطور با یک کلمه می بدترین محکومان را از سیاه چالهای مخوف برهاند. قاضی که هر وقت می‌دیدمش، جامه‌های حریر و زربفت به داشت، مانند کسانی که نسبت به عظمت خود ذره‌ای شک ندارند، با قرور و نخوت راه می‌رفت. می‌دانستم که نفسش چقدر فربه است. و برای سلامت درویشهایم سعی می کردم با این مرد دهن به دهن نشوم قاضی انجیری به دهن انداخت و گفت در مرفه ترین شهر دنیا زندگی می کنی. امروز بغداد پر شده با پناهندگانی که از دست قشون مغل فرار کردند. برای این بینواها به ساحل امن تبدیل شده ای. باید بشویم چون اینجا مرکز دنیاست تو چه میگویی در این خصوص بابا زمان با آرامش گفتم شهرمان گرانبه گرانبهاست در این شکی نیست اما نباید فراموش کنیم که شهرها به آدمها میمانند به دنیا میآیند بزرگ میشوند اول بچه اند بعد بالغ میشوند بعد پیر می شوند و سرانجام می میرند. در حال حاضر بغداد جوانی را پشت سر گذاشته. مثل زمان خلیفه هارون رشی در رفاه نیستی. گرچه خدا را شکر هنوز هم مرکز تجارت و صناعت و شعری. اما چه کسی می داند هزار سال بعد این شهر به چه چی چیزی شبیه خواهد بود؟ در آن زمان ممکن است همه چیز کاملا فرق کند. قاضی غزات گفت: تو چقدر بدبینی؟ دستش را به طرف کاسه دراز کرد و انجیری دیگر برداشت. حکومت عباسی تا ابد پاینده خواهد بود. رفاه و نفوذمان در این منطقه بیشتر خواهد شد. البته اگر بعضی نمک به حرام ها که در میانمان هستند، ثبات و امنیت را به هم نزنند. بین ما کسانی زندگی می کنند که به خودشان میگویند مسلمان. اما تفسیرهایشان از کفار هم خطرناک تر است. ترجیح دادم سکوت کنم. همه میدانستند قاضی القضاوت متصوفان پیرو تفسیر باطنی را بلای جان می‌داند به ما اتهام میزد که به حد کافی اصول شریعت را رعایت نمی‌کنیم و به خصوص به مراجع عالی یعنی آدم‌هایی مثل خودش احترام نمیگذاریم. اگر دست او بود خیلی وقت پیش همه ی ها را از بغداد بیرون کرده بود قاضی در حالی که ریشش را میخاراند گفت یک موقع سوء تفاهم نشود من از تو خانقاهت خرده بردی ندارم بابا زمان اما به نظر تو این طایفه صوفی ها از نظام کلی خارج نیست نمیدانستم چه بگویم بخت با من یار بود که همان موقع دم در سر و صدایی شد. شاگرد موقرمز رخصت خواست و وارد اتاق شد. مستقیم به طرف من آمد. خم شد و در گوشم گفت مهمانی ناخوانده داریم. گفت در ویشی آمده و در باخش منتظر است. گفته فقط با من می خواهد ملاقات کند. و حرف زدن با دیگری را رد کرده اگر زمان دیگری بود به شاگرد میگفتم این حبیب خدا را بی سر و صدا به اتاقی ببرد یک کاسه غذای گرم جلوش بگذارد و بگوید تا قاضی و افرادش بروند همانجا منتظر بماند اما دیگر از صحبتهای قاضی اعظم به جان آمده بودم با خود گفتم، اگر آن مسافر سرگردان را به این اتاق بفرما بزنیم، حکایت های از سرزمین های دور برایمان تعریف می کند و جو متشنج اتاق از بین می رود. برای همین به شاگرد گفتم، برو آن درویش را صدا کن بیاید اینجا. چند دقیقه بعد باز شد. و مردی سراپا سیاه پوش سالم و سرحال وارد شد سنش را مشکل میشد شد حد زد. قد بلند، ظریف و پیشانی فراخ بود و فردی چست و شابک به نظر می رسید موهای سرش خیلی بلند بود و ظلف مجعدش روی چشمهایش می افتاد ای بلند به عبایی پشمی بر دوش و چکمی از چرم گاومیش به پا داشت. چند تعویز از گردنش آویزان بود. کاسه چوبی در دست داشت. لابد مانند قلندری ها که برای دور ماندن از مال دنیا گدایی می کنند یا مانند ملامتی ها که علایق دنیوی را با پشت دست پس میزنند گوشهایش را بر روی قضاوت‌های همیشگی مردمان بسته بود تا چشمم به این مهمان ناخوانده افتاد حس کردم با شخصیتی خارق العاده روبرو شدم در نگاه‌ها و رفتار و حرکاتش نشانه‌هایی بود حاکی از آن که فردی غیرعادی است نهال بلوت به نظر ناآگاهان ضعیف و شکننده میرسد حال آنکه درخت بزرگ و مقرور جنگلی در درون دارد البته برای چشم بینا مهمان آهسته سرخم کرد و سلام داد گفتم به زاویه من خوش آمدی بعد اشاره کردم روی مخده روبهرویی بنشیند درویش به همه کسانی که در اتاق بودند تک به تک سلام داد و با آرامش در جایی که نشانش داده بودم نشست. طوری که بخواهد همه چیز را جز به جز ببیند اطراف را با دقت نگاه کرد. سرانجام نگاهش بر قاضی القزاد ثابت ماند. هر دو بیان که کلمهی بر زبان آورند مدتی طولانی همدیگر را نگاه کردم. کنجکاف شدم بدانم این دو مرد که در ظاهر دو قطب متضاد بودند، درباره یکدیگر چه فکری می کنند. به درویش آواره، شیر بز، انجیر اصلی و دلمه خرما تعارف کردیم. اما همه را با ادب و نزاکت رد کرد. اسمش را که پرسیدیم گفت شمسدین تبریزی و گفت است که در کوه و دشت در جستجوی خدا بوده. پرسیدم خب چیزی را که در جستجویش بودی پیدا کردی؟ درویش کاملا مطمئن از خود سر تکان داد. در چشمهای سیاهش جرقه شیدایی هویدا شد گفت پیدا کردم بله نگو او همیشه با من بوده قاضی تا این حرف را شنی نیشش باز شد و با حالت پختگی که زحمت مخفی کردنش را به خود نمیداد گفت ای بابا شما درویشها عجب آدم هایی هستی من که اصلا نمیفهمم برای چی زندگی را اینقدر سخت میگیرید. خوب خب مرد حسابی اگر خدا از اول با تو بوده برای چی کوه و دشت و در وو صخره را به دنبالش گشته ای؟ شمس سرش را خم کرد. سایی نامحسوس از شهرش گذشت مدتی لام تا کام هیچ نگفت. دوباره که شروع به حرف زدن کرد آرام و مطمئن بود لحن صدایش سنجیده بود درست است که خدا را با گشتن نمیتوان پیدا کرد اما خدا را فقط کسانی پیدا میکنند که به دنبالش می گردند. قاضی القزات لب برچید و گفت لاف گذا یعنی تو الان داری به ما میگویی اگر تمام عمرتان یکجا بمانید نمیتوانید خدا را پیدا کنید؟ توبه از الله یعنی برای پیدا کردن خدا همه باید مثل تو کهنه سیاه به تنشان بکشند و آواره بیابانها بشوند؟ اگر آنطور بود نه چیزی به نام جامعه بود و نه تمدنی در کار بود. آدمهای توی اتاق که انگار برای چاپلوسی قاضی مسابقه گذاشته بودند، قهقه های مسخر سر سردادند. حوصله هم سر رفت. معلوم بود کنار هم نشاندن قاضی و درویش فکر خوبی نبوده. شمس گفت فکر می کنم حرفم را درست بیان نکردم. نگفتم اگر آدم در خانه که به دنیا آمده بماند حق را نمیتواند پیدا کند. البته این امکان دارد: انسانهایی بوده و هستند که از روستایشان خارج نشدهاند اما دنیا را میشناسند. قاضی اعظم گفت: «من هم همین را می گویم. بعد پیروز مندانه خندید اما همین که حرفهای بعدی درویش را شنید خنده بر لبانش خشکید شمس ادامه داد اما چیزی که می‌خواستم بگویم این است که اگر کسی دنبال مال و منال و مقام برود غرق جواهر شود و جامعه اطلس و حریر برتن کند یعنی کارهایی مثل کارهای شما بکند، حضرت قاضی، غیر ممکن است به تواند خدا را بیابند. آدمهای توی اتاق از حیرت ماتشان برده بود. هیچ کس رنگ به رخ نداشت. کسی دنبر نیاورد. آدمهای قاضی آن که حتی جرعت نفس کشیدن داشته باشند با نگرانی به همدیگر نگاه میکردند هایشان دست به شمشیر بردند قاضی با عصبانیت گفت میبینم زبانت به زبان درویشها نمیماند زیادی تیز است شمس تبریزی در جواب گفت اگر لازم باشد حرفی را بزنم همه دنیا هم جمع بشود نمی تواند جلوم را بگیرد حرفم را میزنم قاضی القضاات با آنکه ابروهایش در هم رفته بود برای آنکه نشان دهد به درویش چندان اهمیتی نمیدهد ای تکان داد و گفت خب حالا بکسریم از بس حرف مفت شنیده این، گوشمان عادت کرده به هر حال آدمی که دنبالش میگشتیم تویی. داشتیم درباره شکوه و عظمت شهرمان حرف می زدیم. حتما جاهای زیادی دیده ای. بین آن همه دیار که گشتی جایی زیباتر از بغداد هست؟ بگو به ما. شمس با نگاه‌هایی که نرم شده بود همه را تک به تک از پیش چشم گذرا گفت شکی نیست که بغداد شهری شایان تقدیر است اما هیچ زیبایی در این دنیا ماندگار نیست شهرها بر ستونهای معنویت است که پا بر جامی قلوب ساکنانشان را منعکس می کنند. مانند آینه های قولاسا اگر آن دلها بسته شوند یا سیاه شوند شهرها هم جاذبهشان را از دست می‌دهند بسیار شهرها این گونه از میان رفتهاند، بسیار شهرهای دیگر هم از میان خواهند رفت سرم را ناخواسته تکان دادم شمس تبریزی به طرف من برگشت به نظر می‌رسید از افکاری که در آن غرق شده بود کمی فاصله گرفته در چشمهایش برقی دوستانه بود همین که نگاه های شیدایش به صورتم خورد انگار که صورتم را بر خورشید مالیده باشم درونم را آتش فرا گرفت آن هنگام فهمیدم که اسم و جسم این مرد یکیست مثل خورشید که نامش را گرفته بود نیرو و زندگی می پراکند مثل گلوله آتش از درون می خورشید حقیقی بود شمس اما قاضی القضات جور دیگری فکر می کرد گفت راستش شما صوفی ها همه چیز را با هم قاطی می کنید. درست مثل فیلسوف ها و شاعرها. همه اش حرف و حرف به این همه کلمه چه است؟ چنان حرف میزنید که آدمها گیش میشوند حالان که عوام و ناس مخلوقات تمبلیند و احتیاجشان ساده است وظیفه کسانی که آن بالا این است که مانع شوند از اینکه مردم چیزهای اشتباه بخواهند و از راه درست خارج شوند برای این کار تنها چیزی که ضرورت دارد تبعیت کامل از شریعت است چگونگی آن را هم ما میدانیم شمس تبریزی گفت شریعت مانند چراغ است روشنایی میبخشد اما نباید فراموش کرد که چراغ هنگام راه رفتن در تاریکی به کار آن می آید که جلو پایت را ببینی بعد از شریعت نوبت طریقت است بعد از طریقت نوبت معرفت بعد از معرفت هم نوبت حقیقت اگر جهت اساسی فراموش شود و انسان شریعت را نوسیله که هدف بشمورد، آن چراغ دیگر چه فایدهی دارد؟ ترس وجودم را فرا گرفت. نطخ کردن در باره ضرورت فرارفتن از شریعت برای مرد مقروری که معتقد بود کلید شریعت را در دست دارد، عین شنا کردن در تنداب بود. آیا شمس این را میدانست؟ درست همان موقع که من دنبال بهانهای مناسب برای بیرون بردن درویش از اتاق می گشتم، شمس ادامه داد میتوانم توانم ذکر کنم که مرامم را بهتر توضیح می دهد. قاضی با شک پرسید چه قاعدهی؟ شمس تبریزی صاف نشست با صدایی رسا؟ طوری که انگار رسالهای را از روی کتاب میخواند توضیح داد حضرت پیامبر فرموده است قرآن را از هفت بعد می میتوان خواند ما این هفت را در چهار مجموع میکنیم قاعده سوم قرآن را میتوان در چهار سطح خواند سطح اول معنای ظاهری است بعدی معنای باطنیست، سومی بطن بطن است، سطح چهارم چنان عمیق است که در وصف نمی گنجد. شمس با برقی در چشمانش به صحبت ادامه داد. حالا آنان که صرفاً به شریعت می نگرند و ماورایش را نمی بینند، معنای ظاهری را می دانند. طایفه صوفیان اما معنای باطنی را میداند اولیای کامل وطن بطن را میداند سطح چهارم را اما فقط عاشقان واصل و پیغمبران میدانند یعنی تو الان میگویی متصوفی عادی ممکن است احکام قرآن را بهتر از عالم شریعتی مثل من بداند؟ اینطور طور است؟ تبسمی اینا محسوس بر لبان درویش نشست، اما جواب نداد. قاضی القضاد فریاد زد. حرف دهنت را بفهم. داری از حد خودت تجاوز می کنی. کم مانده مرتکب گناه بشوی. بعدن نگویی که نگفت با آنکه حرفهای قاضی خیلی تهدیدآمیز بود شمس طوری که انگار متوجه قضیه نیست با آرامش ادامه داد نباید درباره دیگران اینطور سریع و قاطع قضاوت کرد خدا در قرآن می‌گوید با حق بنده‌ای نزد من نیایی نکند فراموش کرده اید. تازه، انکار چیست یا گناه چیست. باید مفاهیم را از نزدیک نگریست. اگر اجازه بدهید، می خواهم حکایتی تعریف کنم و این حکایت را برایمان تعریف کرد. روزی حضرت موسی تک و تنها در کوهستان می گشت. ناگهان از دور چشمش به چوپانی فقیر و تنها افتاد. چوپان زانو زده دستها را رو به آسمان بلند کرده و مشغول دعا کردن بود. موسا از این وضع حال خیلی خوشش آمد. اما همین که نزدیکتر شد و دعای چوپان را شنید از حیرت ندانست چه بکند. ای خدا قربان تو بروم اگر بدانی چقدر دوستت دارم هر کاری که بخواهی میکنم فقط کافی است که تو بخواهی اگر بگویی چاق و ترین گوسفند گله را سر ببر برای خاطر تو بی معتلی سرش را میبرم قرمه گوسفند خیلی لذیذ است خدایا اگر دنبه را هم آب بکنی و روی پلو بریزی، خوشمزه تر هم می شود. موسا همانطور که بدعا گوش می کرد، به چوپان نزدیک شد. اگر بخواهی جامعت را می شویم، چارغت را میدوزم دوزم، شپشهایت را میکشم سرت را شانه می زنم، خیلی دوستت دارم، چاکرت هستم خدایا. موسی که این حرف را شنید از خشم و عصبانیت کم مانده بود دیوانه شود. با داد و فریاد دعای چوپان را قطع کرد ساکت باش ای مرد نادان چه کار داری میکنی مگر خدا پلو می مگر خدا جامه دارد که بشویی این چه دعایی است داری مرتکب گناه می زود تو بکن چوبان سرزنش های موسا را کشنید تا بناگوشش سرخ شد از خجالت می‌خواست زمین دهان باز کند و او را فرو ببرد پشت سر هم عذر می‌خواست و قول می‌داد که دیگر این طور از روی فکر خودش دعا نکند موسا آن روز تا قروب پیش چوپان ماند و دعاهای اصلی را یادش داد بعد با خود گفت خدا از من راضی می شود کار خوبی انجام دادم و راهش ادامه داد اما آن شب صدایی شنید صدای پروردگارش را ای موسا امروز چه کردی؟ تو برای وصل کردن آمدی؟ یا برای فصل کردن این چوپان غریب را آزردی نتوانستی درک کنی که او چقدر به من نزدیک است با آنکه معنی حرفهایش را درست نمی‌دانست در ایمانش صادق بود قلبش پاک و نیتش خالص بود ما به چلام نگاه نمیکنیم به نیت نگاه میکنیم اگر قرار بود به کلام نگاه کنیم، انسانی بر روی زمین نمی ماند. ما از چوپان راضی بودیم. حرفی که در نظر دیگری مت است، در نظر تو زم است. چیزی که برای او اصل است برای تو زهر است. تو شنیده هایت را انکار و کفر شمردی، اما بدان، که اگر خطا هم کرده باشد، این خطا از صد سواب اولاست. موسا فهمید که اشتباه کرده. روز بعد همین که خورشید طلوع کرد، برای دیدن چوپان دوباره راه کوهستان را در پیش گرفت. چوپان باز هم مشغول دعا بود، اما از هیجان و سمیمیت دیروزی، اثری نمانده بود چون می خواست همانطور که یادش داده بودند زاری و التماس کند از ترس اینکه مبادا اشتباهی از او سر بزند مدام می ایستاد منمن می کرد و عرق میریخت. موسی موسا از کرده اش پشیمان شده بود پشت چوپان را نوازش کرد و گفت ای دوست من خطا کارم مرا عفو کن هر طور که بلدی دعا کن دنبال آداب و ترتیب نباش هر چه دل تنگت میخواهد بگو در نظر خدا این طور دعا کردن ارزشمندتر است چوپان چون این حرف ها را از موسی حیرت کرد اما خیالش نیز افسوده شد. در اصل او دیگر به مرحلهی والاتر واصل شده بود. نه به انکار کار بازگشت، نه به گناه صادقانش. در بند از برخاندن دعاهایی که موسا یادش داده بود نیز نماند. به ماورای همه اینها رفت. زندگیش از آن پس در قرب پروردگارش زندگی خوش و مبارک بود شمس گفت از این رو ممکن است حرفی که از دهان یکی مانند اصل میریزد به گوش دیگری همچون زهر برسد حالا که خدا زبان را ننگرد روان را بنگرد آداب دانان دیگران. ملت عاشقان دلسوخته از همه دینها جداست. ما مذهب و دین و زبان را عامل نمی نمیدانیم. همه عالم را یکی میدانیم. به حرفی که از دهان دیگری در میآید گناه گوییم زیرا درون دلها را خدا میداند نهما. از این رو سکوت میکنیم، و کسی را نمی مذهب ما یکیست، آن هم خداست. همین که شمس ساکت شد، زیر چشمی به قاضی القزات نگاه کردم. با آنکه در چهرهش اعتماد به نفس و امنیت خاطر موج میزد پیدا بود به تنگ آمده. اما از بس رنگ بود، لابد به این هم فکر کرده بود که اگر به حکایتی که شمس تعریف کرد واکنش منفی نشان بدهد، آن وقت مجبور است گامی جلوتر بردارد و او را به این دلیل که حد خودش را نشناخته مجازات کند. در این صورت اوزا خرابتر می و در بغداد چو افتاد که درویشی عادی با قاضی القضات در افتاده پس بهتر بود طوری رفتار کند که انگار چیز مهمی اتفاق نیفتاده و موضوع را همینجا درس بگیرد همین کار را هم کرد بیرون خورشید داشت خروب می کرد و آسمان به سرخی می در آن میان ابرهای تیره مدام از شکلی به شکلی در میآمدند و نقشی رنگارنگ در آسمان میآفریدند کمی بعد قاضی القضاة بلند شد. گفت که باید به امر مهم می رسیدگی کند. بعد از خداحافظی مختصری با من، نگاهی سرد به شمس انداخت و راهش را کشید و رفت. افرادش هم با عجله و در حالی که هم دیگر را حلمی میدادند از پیش رفتند. بعد از آنکه همه رفتند، من و درویش تنها ماندیم. گفتم، متاسفانه به نظر می آید، قاضی القزات خیلی از تو خوشش نیامد. شمس تبریزی، زلفهایی را که روی چشمهایش افتاده بود، کنار زد و خندی. بگذار از دستم عصبانی باشد، من از دست او عصبانی نیستم، راستش عادت کرده به این که قاضی ها دوستم نداشته باشند. دروغ است اگر بگویم هیجان زده نشدم، آنقدر در رأس این خانقاه بودم که بدانم هر چهل سال یک بار ممکن است مهمانی تسلیم حق، و دارای قلبی مطمئن به اینجا بیاید. گفتم حالا تعریف کن ببینم چه شد که گذارت به بغداد افتاد اینجا دنبال چه می گردی؟ از یک طرف با هیجان منتظر بودم که تعریف کند از طرف دیگر میخواستم تعریف نکند نمیدانم چرا جوابی که مشتاقانه در انتظار شنیدنش بودم این طور به دلم ترس می‌اندازد